صبحتون به خیر و دلتون پر از آرامش تازه های بهتاش و سلامتی این هفته رو خدمتون ارز میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره افسایش مرگ زودهنگام به دنبال حمله قلبی در میان سالی مطالعات نشان میدهد ریسک مرگ زودهنگام بعد از گذشته سی سال از حمله قلبی در بین افراد جوانتر از پنجه سال کاهش یافته است اما همچنان دو برابره جامعیت عمومی است دکتر مورتن اشمید سرپرست تیم پژوهش از دانشگاه اوووس دانمارک عنوان کرد این ریسک بالاتر عمدتا ناشی از شرایط شرایطی نظیر فشار خون بالا دیابت و است در... که در بین افراد دچار حمله غربی متداولتر است. اشمید در ادامه میگوید، بیماران جوان مبتلا به حمله غربی باید بدانند که ریسک بالای شرایط مرگبار همچنان برایشان وجود دارد. از این رو باید داروهای تجویزشان را مصرف کنند و فاکتورهای پرخطر سبک زندگیشان بخصوص سیگار کشیدن را کاهش دهند. تیم اشمیت در این مطالعه بقای بلندمدت حدود هزار دانمارکی که قبل از سن 50 سالگی دچار حمله غربی شده بودند را بررسی کردند. بیماران به مدت حدودا یازده سال تحت نظر بودند و با دویست هزار فرد از جمعیت عمومی جامعه مقایسه شدند وی در ادامه عنوان می‌کند که نیم دیگر هم احتمالا ناشی از ترکیب فاکتورهای نظیر درمان زودهنگام در راستای بازگشت جریان خون به بخش آسیب دیده قلب بهبود خدمات های بیمارستان و مدیریت بهتر فشار خون بالا و کلسترل بالاست اما در گزارشات عنوان شده که همچنان ریسک مرگ در مدت یک سال بعد از این حمله قلبی در مقایسه با جمعیت عمومی دو برابر است زنان دچار حمله قلبی در مقایسه با زنان فاقد این حمله سه برابر بیشتر در معرض خطر مرگ هستند اما در مردان این ریسک دو برابر است تازه بعدی در مورد رنگ رنگهاست رنگ مورد علاقتان درباره شما چه میگوید زمانی که توضیحات هر رنگ را میخوانید آن چیزی را که در نظر بگیرید، ترجیم می‌دهید، انجام بدهید. نه آن چیزی را که باید انجام بدهید. در ادامه مطلبی که خدمتتون ارز می‌کنم، چهار رنگ شخصیت آمده که به شما شخصیت واقعی‌تون را می‌گویند. رنگ آبی فقط پونزه درصد از جمعیت در تست شخصیت رنگ‌های واقعی آبی هستند. وبگاه، Trus میگوید گوید رنگ آبی شخصی را نشان میدهد که ابتدا به روایت فکر می کند و برای روابط بیش از هر چیز دیگر ارزش قائل است. این گروه اساسا مردم هستند. ویژگی های رنگ آبی از سیستم شخصیتی رنگ های واقعی عبارتتا از عشق به مردم معاشرت کردن و صحبت کردن، سخاوت نسبت به دیگران، کمک کردن به دیگران، را برای همراهی مسالت آمیز دوست دارند از ارتباط داشتن با دیگران در یک سطح احساسی لذت میبرند، تصور می کند که دیگران بهترین نیات را دارند رنگ سبز این تیپ شخصیتی هم بسیار نادر است فقط حدود 25 درصد از جمعیت رنگ سبز از رنگ واقعی هستند سبز آدم بیشتر واقع را نشان میدهد. دانشجو یا آدم بالغی که معمولا میپرسد چرا سبز ها قوانین و مقررات را زیر سؤال میبرند و اگرچه معمولا عاشق یاد گرفتند،, یاد گرفتند هستند معمولا مردم گرا و ساختار گرا نیستند ویژگی های سبز در سیستم شخصیتی رنگ های واقعی عبارتا از ترجیح می دهند قبل, قبل از تصمیم‌گیری تحقیق کنند حقایق و داده های مربوط به واجه ها و تصاویر را دوست دارند حل مسئله و تفکر, تفکر انتظایی را دوست دارند ترجیح می دهند که مستقل کار کنند رنگ تلایی 35 درصد از جمعیت در گروه بندی رنگ های واقعی تلایی هستند در این وبگاه رنگ های واقعی میگویند بسیاری از رهبران، مدیران و غیره طلایی تیپ شخصیتیشان است. گروه طلایی معمولاً در مدارس عملکرد خوبی دارند و به درستی از قوانین پیروی می کنند. دانش آموزان طلایی در یک محیط به شدت نظامند راحت هستند. ویژگی رنگ طلایی در سیستم شخصیتی رنگ های واقعی عبارتن است، آنها قبول مسئولیت می کنند در شرایطی که کسانی کسی این کار را نمی کند برنامهریزی می کنند و استراتژی دارند. به جای اینکه به طور ناگهانی وارد پروژه شوند اما توانایی اقدام سری را نیز در مواقع لزوم دارند. جوانه به مثبت و منفی را در زمان اتخاص تصمیم در نظر می گیرند برای آینده برنامه ریزی و پسانداز می کنند حس تشخیص قوی اخلاق و شخصیت دارد و رنگ نارنجی سی درصد جمعیت در سیستم رنگ واقعی نارنجی هستند. آدم های نارنجی عاشق فعالیت هستند و برایشان بسیار دشوار است که به مدت طولانی خاموش و آرام باشند آنها قوانین را دوست ندارند و بیشتر فعالیت های فوری و ناگهانی را بدون برنامه ریزی قبلی و در لحظه ترجیح می دهند آدم های نارنجی در یادگیری سریع هستند و اغلب بسیار باهوش آنها می توانند مهارت های مکانیکی فوقلادهی داشته باشند و اغلب در ورزش، نمایش، موسیقی، هنر و دیگر کارهای رقابتی، خلاقانه و کنشی بینظیر هستند. و آخرین خبر در مورد ویتامین آ. ویتامین آ قاتل سرطان روده. مطالعات تحقیقات دانشگاه اسپورت نشان می دهد. ویتامین آ در بدن تبدیل به ترکیبی می شود که قادر به سرکوب تومورهای سرطان روده بزرگ است به گزارش میدیکال اکسپرس زمانی که ویتامین آ وارد روده می شود به ترکیبی به نام اسید ریتینونیک تبدیل می شود که با کاهش التحاب در سرکوب تومور روده موثر است معمولاً ویتامین آ به عنوان بهبود دهنده سیستم بینایی شناخته شده است ولی تحقیقات جدید نشان می دهد این ویتامین در کاهش التحاب و تقویت سیستم ایمنی نیز موثر است ویتامین آ نقش مؤثری در پیشگیری و درمان سرطان روده دارد هویج کاهو، سیب زمینی، روغن کبد ماهی، فلفل قرمز، فلفل ای، انبه، خردل، گردو، ریحان خوش شده، گوجه فرنگی، برگه زردالو، حلو، اسفناج و جگر گوساله منبع قنی ویتامین آ هستند تنتان به ناز طبیبان، نیازمند مباد تندرستیتون پایی